عباس خان مدتی جلوی منزل شیخ با راه رفت و به بالا و پایین کوچه نظر انداخت تا بالاخره از را جزم کرد و کوبه در را کوبید مرد کوتاه قامت سکنجی که پیشبند سفید نیل خورده بر روی پیراهن و شلوار بختیاریش بسته بود در را به رویش باز کرد عباس خان مثل همه دفعاتی که بازش روی مواجه می شد بی اختیار بر زمین توف انداخت مرد سکنج با صدایی تو دماغی و کشتار گفت اخلاط زمین نندازی حضرت آقا منبع مرزه عباس خان شرم زده گفت توف که بود توفخست و بعد برای آنکه چشمش باز به لب شکری مرد نیفتد نگاهش را به نقطه که آب دهان را پرانده بود دوخت و پرسید جنابالی سیخولت با هستین؟ مرد گفت خیر حضرت آقا، بنده معاونت میکنم بفرمایید در هشتی منتظر و نوبت عباس خان از ذهنش گذشت که از همانجا برگردد و معاینه طبیب را به روز دیگری بگذارد ولی چندین روز بود که امروز رو فردا می کرد و ته دل می دانست اگر این بار از اینجا عقب گرد کند دیگر دلیری کوبیدن در را نخواهد داشت به علاوه رویت مجدده معاون شیخ با را چگونه برتابد؟ بنابراین همچنان با سر افکنده و چشم بر زمین دوخته اول قدم به حیات و بعد به هشتی گذاشت معاون شیخ خلط با مراجع را به حال خود در هشتی رها کرد و به راه روی انتهای هشتی رفت و داخل اتاق شد و عباس خان فرصت یافت که ساکنین هشتی را از نظر بگذراند سوای او دو نفر دیگر در انتظار طبیب بودند مردی با سرداری برک و کلاه تخم مرغی بر یکی از سندلی های چوبی کنار دیوار نشسته بود و بر یکی از نیمکت ها ملای چوندک زده بود و نعلینش را کنار پای نیمکت جفت کرده بود بقیه سندلی ها و نیمکت‌های چوبی دور تا دور هشته خالی بود حباسان گلو را صاف کرد سلام آیسته گفت و بر یکی از سندلی های خالی نشست سرداری پوش نگاهی به طرف او انداخت و یا لاهی تحویل داد و بعد باز چشمها را به سخمت وجه کرد و به گرداندن تسبیح مشغول شد نگاه آخون در حالی که از روی لباده و امامه سیاه پهلوها و سرش را می بیشتر بر صورت عباس خان درنگ کرد صدای خیرت, خیرت های ملا نیاز به خارش را در عباس خان زنده کرد کشاله هایش را بر همف و بلا فاصله کتاب درس فرانسه را که پدرش محسن خان به هنگام ثبت نام او در مدرسه الیانس برایش تهیه کرده بود از جیب درآورد آورد و وانمود که سرگرم مطالعه است. های پدر به او تا زنده بود غالباً از مقوله کتاب بود. سوای یک ساعت میناکاری بغلی با زنجیر طلا و یک عصا سرنقره از چوب ابونوس عباس خان این هر دو را در شبهایی که با دوستان به باغ و بستان میرفت با خود بر برمیداشت دیگر وسایل آرایش و پیرایش باب روز را از مقرری که محسن خان برایش معین کرده بود و سخاوتمندانه بود تهیه میدید طولانیترین دیدارها از درش به وقت تدریس فارسی و عربی و ریاضیات بود که میرزا محسن خان شخصا برخته گرفته بود امیرخان هم سر این دروس حاضر می‌شد و گوش میداد و هر وقت عباس خان در جواب عاجز ماند داوطلب پاسخگویی بود این اواخر طوری شده بود که محسن خان فقط با امیرخان سر و می زد و عباس خان با بی‌صبری در انتظار میماند تا ساعت تدریس سر وقتی خبر افتادن میرزا محسن خان را از بام کاروانسرا آوردند عباس خان مدتی به صدای بلند شیون کرد و طول و عرض اتاقها را پیمود و امیغن پریشان بود به سبک خود به پدر دل بسته بود و او را بی فنا تصور می کرد و منبع لاگزال گذران زندگی می دید میرزا محسن خان از نحوه رفتار او شاکی بود این را عباس خان به خوبی میدانست چون پدر مکرر متذکر شده بود که از راه و رسمی که عباس خان پیش گرفته است دلتنگ است حتی قبل از عزم سفر به مقصد سابه او را خواسته بود و این بار اختار کرده بود که اگر شبگردی را کنار نگذارد و مجدانه به فراگرفتن گرفتن درس حقوق در دارالفنون نپردازد مقرریش قطع خواهد شد عباس خان آن روز دست به سینه در حضور میرزا محسن خان ایستاد و جز اطاعت پده اطاعت هیچ نگفت و مثل همیشه نیتش این بود که مطیع اوامر محسن خان باشد و نصایح او را به کار ببندد از فردا بعد از ماه رمضان حالا محرم بیاید و برود عباس خان پس از گرفتن خبر مرگ پدر و موگه بسیار و قدم مال کردن خانه به اتاق خود رفت و در آن خلوت برای اولین بار متوجه شد که از این پس آقا و فرمانده سرای اوست و با تعجب دریافت که از این آگاهی احساس سبکبالی و فراغ خاطر میکند گویی دیگر صد بر سر راه خواستهایش نیست و از این پس میتواند آن آنچه را اراده کند به دست آورد آن شب هم مثل دیگر شبهای غیبت محسن خان از خانه به سراغ ملوک رفت و برای مرهم نهادن برقم از دست دادن پدر یا جشن گرفتن برای خدای خانه شدن خود این بار هم خواب گشت با ملوک از همیشه دلچسبتر بود از زمانی که عباس خان به مدرسه الیانس میرفت امیرخان موذب شده بود در پایان اولین روز درس عباس خان امیرخان را برای خیابانگردی با خود برد و گفت من میگم پخ لو پخ تو بگو دو تخوا اما یه تویی بگو انگاهی سؤال میکنی بگو امیرخان با حیرت پرسید برای چی عباس خان گفت بیای این که فکر کنن ما فیانسه حرف میزنیم عمیر خان بیمیلیش را به این کار با این پا آن پا شدن و لب برشیدن نشان داد عباس خان اصرار کرد ای بازی دیگه منم اینجوری فیانسه را تمیین میکنم به تو هم یاد میدم حالا بگو و تقا ببینم یاد گفتی؟ عمیر با خنده خشدت گفت خوب خوبه؟ نه یه تویی بگو انگای شعال میکنی پخ پخ حالا عباس خان ادامه داد مخ لمخ امیر خان پرسید حالا من چی بگم تو فقط بگو دو تخا اما انگای سوال میکنی و تکرار این بازی سبب شد که امیرخان به هزار یک بهانه از زیر بار خیابانگردی با برادرش شانه خالی کند خاصان که عباس خان مدرس بدی بود و وقتی امیر خان میپرسید فرق پیغ با لو پیغ چیه در توضیح در می ماند عباس خان در حالی که سرش را کم بیش به صفحه کتاب درسیش چسبنده بود با چشم میخواند فون و بالب می ساخت و جلو می رفت کلیا دو پیوبا با کویتی و از فون سو کلیا دو با دانزون که ولی حتی یک کلمه را به ذهن نمی چون هنوز به نیم نگاه های سرداری پوش و مداوم ملا به خودش آگاه بود کاش امیر خان را با خود به مطب آورده بود یا سید خواسته بود که همراهیش کند تا کسی سوای طبیب نداند که بیمار کدام است باز برای یک آن تصمیم گرفت که مطب را ترک کند ولی یادش آمد که وقتی سید نشانی شیخ با را به او میداد گفته بود که طبیب حاذقی است برای عموم امراض و بالاخص ماهر است در مداوای امراض مخاربتی پس از کجا معلوم که او برای رفع ذات و جنب یا سو حازمه نیامده باشد چرا باید از روی این دو مراجعه دیگر شرم کند از کجا معلوم که این دو نفر به درد او مبتلا نباشند اگر هم دردند که چیزی به هم بدهی ندارند اگر درد ها از قماش دیگری است عباس خان هم تظاهر می کند که مرضی دیگر دارد مرد لبشکری به هشتی آمد و به طرف ملا رفت و چند بسته گرد به او داد و تو دماغی و کشتار گفت بفرمایید حضرت آقا نسخه شما حاضر شد جانم شبیه یک بسته محلول در یک لیوان آب میل کنید شستشو با پرمنگنات هم فراموش نشه آقا جان شیخ خیرد خیرد کنن از نیمکت پایین آمد و نعلین های جفت شده را پا کرد و پرسید اگر افعاق نکرد سکنج گفت باز تشریف بیارید قدم روی چشم عباس خان به صدای در دیگری که رو به هشتی باز شد سر از کتاب بلند کرد و شیخولت بارا دید که مرد میان سالی را همراهی می که صورت متورم و آماس نیمه زیر شال پشمی پنهان است و از چشمهای تب پیداست که پی و پاچین در رفته است شخلت بار ریش منظم شارب زده ای داشت و چشمان زرد درشتش در پشت اینک پنسی دست تلایی گشاد به نظر می رسید قامتی کشیده داشت و روپوشی سفید و آهارزده زده بر تن و از دید عباس خان کت و مد تصویری که در لاروس اکستار محسن خان در کنار کلمه دکتر دیده بود و خندهش گرفت که یکدم نسخ پیچ لبشکری را با او اشتباه کرده است و وقتی شیخ با او را با خم کردن سر و اشاره دست به داخل اتاق خاند با اطمینان خاطر از جا بلند شد پزشک بعد از آنکه او را لوخت کرد و از ماین فارغ شد پرسید در قسمت انتهای مجرای بول، التحاب دارین؟ عباس خان که پشت به طبیب و با عجله مشغول پوشیدن زیر جامعش بود تا نعوز بیهنگامی را که بر اثر گلقیجه طبیب آرز شده بود بپوشاند، پوشاند گفت، التحاب چهش کنم ولی بیشتر خار سک با گفت، به نظر میاد گرمی زیادی میل کردین و یحتمل در مقاربت هم زیاده روی داشتین مختصری ناسورین و عرقسوز وگرنه علت دیگه ای ندارین که عفونی و ساری باشه بدناسر عفونت در نیست. از خوردن گردو و خرما پرهیز کنید. زماد و گردی میدم برای رفع خارش و اطراف زهار به مالین و لابلای موی زهار چند سباه یمگه اگه میسور باشه عیال رو راحت دذارین عباس خان چنان از نتیجه معاینه به طرب آمده بود که اختیار خنده را رها کرد و گفت عیال هنوز از ولایت فعلا به بهش دشتسی نیست و وقتی زماد و گرد را از معاون سکنج میگرفت فراموش کرد که نگاهش نکند و ناچار سر را برگرداند و بی صدا و بی کف دست خودش توف کرد اجرای دستورات شیخولت با حتی مو به مو و جز به جز برای عباس خان کار ای بود پرهیز از خوردن گرمی و استعمال داروها و راحت گذاشتن عیال. در این نسخه راحت گذاشتن دیگر زنها محلی از اعراب نداشت و بازخان از آن لحظه که متب را ترک گفت به فکر قرقشو کردن افتاد تا سر شب به بعدی که با سید در باقی واقع در میدان پشت بقعه سر قبر آقا گذاشته بود برسد. در شرایط متعارف عباس خان از گذر کردن از محله چال میدان و سرپولک و بعد از غروب آفتاب احتراز داشت. چون شنیده بود که در آن محلات ادهی شیاد به رازنی مشغولند و آبدین را لخت می‌کنند. ولی خبر سلامت جسمی و رویای معانقات آتی در شب زفاف بدون مانع و درد و سوزش سبب شد که اکراهش را به رفتن میدان سر قبر آقا فراموش کند. به علاوه مدتی بود در عضوبت به سر میبرد، برد به علت عرقصوز شدن که تصور کرده بود سوزاک است و از همه اینها گذشته وصف سید از خانمی که قرار بود به باغ ببرد بسیار هوسانگیز بود درشکه یک اسبه گرفت و نشانی را داد سورچی تی کرد که از میدان مارگیرها جلوتر نخواهد رفت و وصف کشافی از ناامنی آن محله داد و اضافه کرد مرنه آلوارم مرباب خدا رو خوش نمیاد سغیرام یتیم شن و عباس خان به بزدلی سوچی با پوزخندی جواب گفت و با گذشتی ایان پذیرفت که در ای که جمعه شبها محل معرک گیری شعبد بازان و دراویش بود را مرخص کند و باقی راه را پیاده تی کند وقتی به میدان رسیدن چند ساعت از شب میگذشت و محله در ظلمات بود حتی کورسوی نوری هم از جای دیده نمیشد. عباس خان کورس سرشی را پرداخت و با احتیاط از درشکه پایین آمد و از دور چشمش به لکه سفیدی افتاد که از سمت قبرستان به طرف او در حرکت بود عباس خان از جا تکان نخورد فقط خودش را به تنه درشکه که هنوز به راه نیفتاده بود تکیه داد به مثل اینکه که با سفیر شلاق و نچنچهای بلند عصف را به حرکت واداشت عباس خان لکه سفید را به صورت مرده کفن پوشی دید که دامن به دندان گرفته و سبک پا به جانب او روان است و ناگهان به نظرش آمد که کل مردگان قبرستان احاته اش کرده اند و دست استخانی یکی از انبات دارد عبایش را از پشتش برمیدارد و فریاد زنان چی را به کمک تلبید نگه دا شوچی لختم کردن نگه آقا وای که بده شوخت و حسای سرنقرش را بیتابانه به بدنه درشکه می گفت و به دنبال گردونه کشیده میشد. شد سوچی که چند متری بیشتر از او فاصله نگرفته بود افسار اسب را محکم کشید و حش غلیزی تحبیل داد و ایستاد عباس خان هراس زده پا را روی رکاب گذاشته و نگذاشته گفت بو آقا یا بیفت لختم کردن اموات عبامون بودن پیدایمون شجون دند بایو ما نکن نکون به اطراف چشم انداخت و دیاری را ندید از صندلی پایین پرید و عبای عباس خان را که لای چرخ درشکگی گیر کرده بود از چمبر خلاص کرد و نرمی و گرمیان را میان دو انگوش سنجید و به امید و تمعی گفت سوار شو ارباب اما این عبام دیگه برای شما حوابشو نیست